حکایت، وزرای نوشیروان در مهمی از مساله مملکت اندیشه همی کردند و هر یکی از ایشان دگرگونه رای همی زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه کرد. بزرگمه را رای ملک اختیار آمد و در نهانش گفتند، رای ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم گفت به موجب آنکه انجام کارها معلوم نیست و رای همگان در مشیت است که سواء باید یا خطا پس موافقت رای ملک اولاتر است تا اگر خلاف سواب آید به علت متابعت از معاطبت ایمن باشم، خلاف رای سلطان رای جستن، به خون خیش باشد دست شستن، اگر خود روز را گویت شب استین، به باید گفت آنک ماه و پروین،